بسم الله الرحمن الرحیم بنا می خدابند بخشنده مهربان حامیم حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم این کتاب کسوی سوی خداوند قادر فتان آورده شده است غالب و قابل لا اله الا که آمر زندهی کنا با توبه با شدید العقاب با صاحب نعمت فرازانه هیچ معبودی جز با نیست، بسوی او من جادی في آیات الله الا الذین کفروا فلا تقلهم في البلاد کسانی در اوجات ما مجادله می كه که کافر شده اند مبادا قدرت موجی آنها ترابت ریبت کذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده و كل ام پیش آنها قوم نوح و اقوامی که بعد از آنها آمدند پیامبرانشان را تكذیب کردند و هر امت توسعهی چید که پانبرش را بگیرد و آزار دهد و برای محض حق با مجادله باطل دستدند اما من آنها را گرفتم و سخت مجازات کردم ببین اصابه الهی چگونه بود این گونه فرمان سرباردگارد در مورد کسانی که کافر شدند مسلم شدند که آنها فما أهلتو دخان الذين <تصفيق> يحملون العرش ومن حوله يسفحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويتغفرون للذين آمنون ورحمن واسع كل شيء رحمه وعلما فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فرشتگان حامل عرش و پیرامون آن خوبی پروردگار خیشرا سفارش میکنند با او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش میخواهند و با میگویند بار خدایا بر رحمت و علم خیش همه چیزها را سرا گرفتی پس و, و فیروان راک خیش را بیا مارد و آنها را از عذاب دو دخت بارهاند ربنا و ارقلهم جنات عدن ملتی و عدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم اینکه الحکیم آنها را به بهشت های جابدانه درار که به ایشان بعده دادید و هر کسی را از بدران، همسران و فرزندانشان که صالح باشد نیم حقا که تو عزیز و حکیمی ومن تفید سیئات یومئذ فقد رحمته و ذالک هو الناول العوید و ایشان را از بدیها نگه دار و هر در آن روز از بدیها نگه داری واقعا بر او کردی و اینا بي کامیابی بزرگ۔ ان الذین كفروا ینادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الیمان فتكفرون کسانی را که كافر شدند روز قیامت صدا میزنند که عداوت و خشم پروردگار نسبت به شما از عداوت و خشم خودتان نسبت به خودتان بیشتر است که دعوت به سوی ایمان می شدید ولی انکار می کردید قارو ربنا امدت نسنتین و احییت نسنتین فا اعترفنا بزنوبنا فهل الی خروج من سبیل آنها می گویند فرور کارا ما را دوبار می راندی و دوبار زنده کردید به بكناهان خود معترفین آیا راهی برای خارج شدن وجود دارد؟ وَلَكِن بِأَنَّهُ إِذَا دَعَى اللَّهُ این بخاطر خاطر آن است که وقتی خداوند به یگانگی خوانده می‌شد انکار می کسید و اگر کسان برای او شریف قائل می شدند ایمان می آفتید اما اکنون داوری مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزرگ کرد هو الذي يُلِيكم او تا تیز که آجات خود را به شما نشان میدهند بس آسمان برای شما روزی با ارتش میفرستد تنها کسانی متذکر این حقایق میشوند که بسوی خدا باز که سعند فدعو اللہ مخلطین له الدین و کره الكافرون رفیع الدرجات ذو العرشی ملک الروح من امرهی على من يشاء من تنها خدا را بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید هر چند کافران ناخشنود باشند او درجات بندگان صالح را بالا میبرد. او صاحب عرش روح را به فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد القا کند تا مردم را از روز ملاقات بی‌انتها یومهم بارجون لا يخفى على الله من شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار روز تلاقی روزی که همه آنها آشکار می شوند با چی جد انها بر خدا مختی نخواست ماند حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند یک تاک قهفاره الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا لَا إِنَّ اللَّهَ الْحِسَابِ امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده دا جزا داده دا می شود هیچ ظلمی امروز وجود ندارد بیکمان خدا پان سریع الحساب است وانزرهم یوم الآزفت اید القلوب لگا من روز ندیگ بترسن روزی که از شدت وحشت دلخوا گلوگاه می رسد بعد تمامی وجود انها ممدوعت اندوه می برای ستمکاران دوستی وجود ندارد و نه شفاعت کننده‌ای که شفاعتش پذیرد نشود یا الله موائه الاعین و ما خدور او چشم‌هایی را که به خیانت می کند میداند و آن چه در سینه‌خافن ها نه با خبر است الله یقضی بالحق والذین يدعون من بی‌شکی ان هو السمیع البصیر خداوند به حق داوری کند و معبودهای را کهیر او میخوانند هیچ گونه داوری ندارند بی‌گمان خداوند چه و بینا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 تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود آنها از نظر قدرت و ایجاد آثار مهمی در زمین از اینها بهتر بودند ولی خداوند آنها را به گناهانشان گرفت بهتر برابر عصاپی او مضافی نداشتند این فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد این خاطر آن بود که آنان پیوسته با دلایل روشن به سراغشان می آمدند ولی آنها همه را انکار می کردند پس خداوند آنها را گرفت بی گمان که او قوی و شدید العقاب است وَلَقَدْ اَغْسَلْنَا مُوتَا بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ما موسا را با آیات خواب با دلیل روشن فرستاتی الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحهم کذار بسوی فرعون و هامان و قارون بلی او صاحر بسیار دروف فلما جاءهم بالحق مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اتلوا أرناء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ و استحيوا وَمَا وما تيد إِلَّا إلا في ظلام هنگام حقا سوية ما براي انها آمد گفتند فسران كثاني را كبا موسى ايمان آبرد عند وقال الدَّرَسَاوِلِ وَالدَّنَانِ شَانَ رَازَ زِنْدَبِ قَلِيبَ أَمَّا أَنَا شَيْكَ كَافِرًا جُزَّ فِي الْغُمْرَاحِي نِزْ فَقَالَتْ لَهُمْ يَرُدُّونِي أَقْتُلُ و آن گفت بگذارید من موسا را بکشم و او پر را بخواند تا نجاستش دهد من از این نیتن که آین شما را دگرگون سازد و یاد در این سمین پساز برپا کند موسى و قال و لا يؤمن بيوم الحساب موسا گفت من به پروردگار خود و پروردگار شما از هر متکبری که بروز حساب ایمان نمی آورد فناح می برم وقال رجل مؤمن من آن فرعون یکتو ایمانه اتقتلون رجلا این یکول ربی الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصلكم بعض الذي يعلكم ان <تصفيق> من مرد مومنی از آل سرعون ایمان خود را پنهان داشت گفت آیا می‌خواهید کسی را به برسانید به خاطر اینکه می‌گوید پروردگار من الله در حالی که دلایل روشنی از سوی پروردگارتان آورده‌اند اگر دروغگو باشد دروغش دامن خود او را خواهد گرفت و اگر زاک گو بوشد لاقل بعضی از عذاب های را که بعد می دهد به شما خواهد شد بی خداوند کسی را که احسان و بسیار دروغو اداو نمی کند یا ملکو المل كل يوم ظاهرین في الارض فمن ينصرنا من ای اره قوم من ابروز حکومت از آن شما وادرین سبتمین پیروزی اگر اصابه الافی سراغ ما آگد چه کسی ما را یاری خواهد کرد فرعون گفت من جز آنچه را مؤسا قدم و شما اران نمیده و شما را جز به طریق حق و فیروزی دعوت نمی وقال الَّذِي آمَنَ يا قوم إِنِّي أَخَافُ عليكم مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ آن <وضح> مرد با ایمان گفت: ای من من بر شما از روز همانند روز عذاب اقوام پیشین خواهتم مثل دعب قوم نوشی و تمود والذین من بعدهم و من الله يريد ظلما للعباد از آدت همچون قوم نوب و آد و کسانی که بعد از آنها بودند می فسند و خدا بند ظلم و ستمی بر بندگانش نمی خواهد و یا قوم اخافو علیکم یوم التناد ای قوم من بر شما از روزی که مردم یک دیگر راستادا میتنند بیناکم یوم ولون مذبرین ما لكم من الله من عاصم و من الله فما له من هاد فمن روز که روی میگردانید و افترار میتنید اما هیچ پناهگاه که در برابر اصاب خدا برای شما وجود ندارد و هر کس را خدا بند گمراه سازد هداویت کننده برای اونی و لقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات فما دلتم فی شک مما جاءكم به حتی اله لك قلتم الله من بعده رسولا ذل الله من هو مسرف پیش از این یوسف با دلائل روشن به سراغ شما آمد ولی شما همچنان در آنچه او آورده بود تردید داشتید تا زمانی که از دنیا رفت گفتید هرگز خداوند بعد از او رسولی مبعوث نخواهد کرد اینگونه خداوند هر اصلاف کار تبدید کننده را گمراه می که رمختند اند الله یا الله على كل قلب که در آیات الهی بیان که دلیل برای آنها آمده باشد، با مجادله بر کاری که خشم عظیم نصب خداوند و نصب کسانی که من آوردند، بار میآورد. این گونه خداوند بان به با قلب هر متکبر جبار مهمی حد وقال فرعون یا ها ما نبنی لی صفحا لعنی ابلغ الاسباب فرعون گفت ای هامان برای من به نوع مرتفی بساد شاو جد ببساو جلی رسم أَحْبَفَ السَّمَاوَاتِ فَأَضْطَلَعَ إلى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ كَابِبًا وَكَذَلِكَ ذُينَ لِفِرْعَونَ سُوءُ عَمَلِهِ وَخُدْ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَونَ إِلَّا فِي تَبَابِثِ و صعود سعود به آسمانها تا از خدای موسی آگاه شوم. از چند گمان می کنم او دروغو باشد این اعمال بد فرعون در نظر دینت داده شده بود و او را از راک که حق باز داشت با و از توسعی فرعون جز نابوزی نمی انجامد و قال الذین آمن یا قومی تبعون اهلکم تبیل و کسی که از قوم فرعون ایمان آورده بود گفت ای قوم از من پیروی کنید تا شما را براک صحیح هدایت کنم هذه الحياه الدنيا ای قوم من این زندگی دنیا متاع زودگذری و آخرت سرای همیشگی من عمل تجئة فلا يجزا إلا مثلها، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئكَ يَرْقُلونَ الجَنَّةَ فَأُولَٰئكَ يَرْقُلونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ هر کس بدی انجام دهد ده جز بمانند ده آن که پرداد نه می شود ولی کسی که عمل صالح انجام دهد ده خواه مرد یا زن در حالی که مؤمن باشد وارد بهشت می شود و رودی بی‌حساب به او داده خواهد شد و من نجات وتدعوننی چرا من شما را به سوی نجات دعوت می کنم اما شما مرا به سوی آتش می کانید؟ و اشرک به ما لیت و مرا دعوت می کنم که به خدا یگانه کافر شوم با شریک هایی که به آن علم ندارم برای او قرار دهم در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز غفار دعوت می کنم لا ادعوا انما تدعونني الیه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الاله و مصرفین هم اصحان نار قطعاً آن که مرا به سوی آن میخانید نه دعوت به حاکمیتی در دنیا دارند و نه در آخرت و تنها کشت ما در کیامت به سوی خداست بردیگو بیگمان مصرفان اهل دو زخم فتترکون ما اقولت و اقوض امری الى الله اِنَّا اللَّهَ بَقِيرٌ بِالْعِبَادِ بابا گودی را میگویم بخاطر خواهید آباد من کار خود را به خداوند یک تا با کوتاه میکنم که او نسبت به نشد بینا فَوَقَامُ اللَّهُ سَنِّيْعَاتِ مَا مَتَوْرُ خداوند او را از نقشهای سوی آنها نگاه داشت و عذاب‌های شدید بر آل فرعون ناظر گشت. ان لا نرضون علیها يعذوا و واتیا ویوم تنمساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب عذاب آنها آتش که هر فرد و شام بر آن عرضه می شوند و روزی که قیامت برپا می شود دستور می دهد ده اول فرعون را در سخت ترین عذاب ها بورد کند و اذ یتاجون فی في النار یقول الضعفاء للذین استكبروا اننا كنا رمتم تبع فقول الضعفاء للذین استكبروا فهل أنتم نصيبا النار؟ بخاطر بیاور هنگامی را که در آتش دوزخ با دو هم مجادله میکنند ذعفا با مستكبران میگویند ما پیرو شما بودیم آیا امروز سهمی از آسش را به جای ما فذی را می شوید قال الذين تتبون إن كلم فيها إن الله قد حكم بين ما همه در آن هستیم خدا در میان بندگانش حکم کرده. وقال الذین فی النار لخن جهنم ادعوربمخفنومامناذبو آنها که در آتشند به خازران جهنم میگویند از پروردگارتان بخواهید یک روز عذاب را از ما بردارد ولم تک رسلكم قالوا بلا قالوا فدعو وما دعاء آنها میگویند آیا پیامبران شما با دلایل روشن به سراغتان نامدند میگویند آه آنها میگویند پسر چی میخواهید دعا کنید ولی دعای کافران جز در ساللا لایم ما به طور مسلم رسولان خود و کسانی را ککیمان آورند در زندگی دنیا بر روزی که گواهان به می خیزند یاری می دهیم يومَئِذٍ فَالتَّالِينَ مَعَظَتُهُمْ وَلَهُمُ روزی که مازرکاهی استم داران جودی ندارد و برای ایشان لعنت است و نیز برایشان دوزخ به حیثیت جایگاه بعد آماده شده است و لقد آتينا موسى هدى و بني ما با موسا هدایت بخشیدیم و بلی اسرائیل را با رسان کتاب قرار تابیم کتابی که مویه هدایت با سزکر برای صاحبان عقل بود پس صبر باشه که بایی پیشه کن که بعدی خدا حق است و برای گناه هست نما و تسبیح و حمد پرباستارت را هر صبح و شام به آورد إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير بیگمان کسانی که در آیات خداوند بدون دلیل کسوی خدا برای آنها آمده باشد ستیزه جویی می کنند در دنهایشان فقط تکبر است به هرگز به منظور خود نخواهند رسید بنابراین به خداوند بر که بیگمان او شنفا و دینا السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن أسر الناس لا يعلمون. آفرينش آسمان هذا تمين، أز آفرينش إنسان هذا مهم ترا. بري أكتر مرتم. نميتان. وَبَعْلَسَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ ولا قَلِيلًا مَا هرگز نا بينا و بینا مصابی نیستند، همچنین کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، با بدتارن یکسان نخواهند بود، اما کمتر متذکر می شود. این ساعت لا لا اکثر الناس لا يؤمنون. روز قیامت به طور مصدم خواهد آمد، شکیدران نیست، ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند پس خداوند است اگر برای شما استجابت کنم اند ذالذین یستکبرون عن عبادتی فیدخلون جهنم شما گفته است مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند زودی با اثر وارد دوزخ توخخ می شود الله الذي جعل لكم من الله فضل على الناس ولكن اكثر خداوند ذاتی که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاساید و روز را روشنی بخش قرار داد بیکمان خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم است هر اکثر مردم شکرگزاری نمی‌کنند وَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا شما آپینندهی همه چیز است؟ یک معبود جز او نیست با این حال چگونه از راه که حق من می میشید؟یت این چونین کسانی که آاجاس خدا را انکار می‌کردند، من حرس می, می شوند الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء أذناً وصورتُم وصورتُم فأحسن صورتُم ورزقتم من الطيبات ذلك الله ربكم فتباهك الله رب العالمين خداوند ذاتی که زمین را برای شما جایگاه که و مطمئن قرار داد و آسمان را همچون سختید و شما را صورتگری کرد و صورتتان را نیکو آفرید و از سیه باد به شما روزی داد این است خداوند پروردگار شما جاوید و پربرکت است خداوندی که فروتگار آدمیان است هوالحیولا إلا الله هو وفدوه مخلصین له الدين الحمد لله رب العالمين دندی باقی او معبودی چه او وجود ندارد پس او را بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید تا توجه محسوس خدا وندی که پر بادگاره جهان یعنی قل بگو من نهی شدهم از اینکه معبودهایی را که شما غیر از خدا میخوانید بپرستم و معمورم که تنها در برابر پروردگار عالمیان تسلیم باشند هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم قفلا ثم يخرجكم قفلا ثم لتبدو أشدكم ثم شيوخا ومنكم وال تقلون او ذاتی است از خاص آفرید سپس اسستا بعد از علاقه سپس شما را به صورت ط بیرون میفرستد بعد به مرحله کمال قوت قیوست می رسید بعدتان تیز می شوید. بعد این میان گروهی می از شما پیش از دست به این مرحله نمی روند و هدفی نفس به ثرامت عمر خود برسید و شاکت تأمل کنید هو قضا یحیی و یمیت فإذا قضى أمرا فإنما یقول له فیکم و همین و هنگامی که چیزی را ارائه کند تنها به آن می موجود باش اونی بلا فاصله موجود می شود آیا ندیدی کسانی را که مجادله در آجات ما می چگونه از را که حق منحرف می شوند؟ الذين كذبوا بالكتاب ورنا اوسلنا اليهم رسلنا آسمانی و آنچه را بر فرستادگان خود نازل کردین تکذیب کردند اما بصودی نتیجه کار خود را میفهمند. فهمند ال در آن هنگام که غلها و سنجیرها برگردن آنان قرار گرفتد و آنها را می‌کشند. فی الحمی ثم لهم كنتم و در آب جوشان وارد می کنند سپس در آتش دوزخ افروخته می شوند سپس به آنها گفته می کجا هستند آنچرا که خدا قرار می دازید. من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعوا من قبل شیئا کذلک یضل الله الكافرین را که جز خدا پرستش میکردید آنها می همه از نظر ما پنهان و گم شدند بلکه ما اصلا قبل از این چیزی پرستش نمی کردیم اینگونه خداوند كافرانرا می ز بینتون و كنتم این بخاطر آن است که بناحق در زمین شادی میکردسی و فروی غرور و مستیم و خوشحالی می, می جهنم مین از درهای جهنم وارد چبی بد جا بدانتر آن بمانید و چه بد جایگاهی جایگاه متكبران بران این ناح تا کن بعض الذين نعدهم او پس ای فهم بر کن بیگمان بعدی خرابند خداوند حق اگر عملی شدن بعضی از وعده هایی را که به ایشان دادیم و تو نشان بدهیم یا سرا بمیرانیم پیش از آن که همه این وعده ها در عمل پیاده شود به هر حال همه ایشان به سوی ما باز میفتند ولقد أغسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء ما پیش از تو رسولانی فرستادیم گروهی از آنان سرگذشت شان را برای تو بازگو کردهایم و گروهی را برای تو بازگو نکردهایم هیچ پیامبری حق نداشت معجزه ای جز به فرمان خدا بیاورد و هنگامی که فرمان خداوند صادر شود در میان آنها به حق داوری خواهد شد با در آن انگام اهل باطل زیان خواهند کرد الله الذي جعل لكم الأنعام تركبوا منها و منها خداوند خدافند که کچار پایم شما آفرید تا بعضی را سوار شوید و از بعضی تغذیه کنید و لکم فی ها منافع ولی تبلغو علیها حاجتا فی خدوركم و علیها و علی الکلک تحملون با برای شما در آنها منافع قابل ای منظورین است که با وسیلی آن با مخصدی که در دلدارید برسید با پر بر آنها با بر کشتیها سوار می شفید. و يريكم آياته فأي آيات الله تنكرون او آيات اشرا هم بارا بشمانشان میدهد كدام يكت از آيات او را انکارت مكنين افلم يزيروا في الارض فينبو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اکثر منهم و اجد قوتا و آتارا في الأرض بما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون آیا آنها روی زمین سعیب نکردند تا ببینند آقبت کسانی که پیش از آنها بودند چی شد؟ هم که نفراتشان از اینها بیشترد و قوت و آثارشان در زمین سزونتر بود هرکس آنچی را به درست می آوردند نفانه آنها را بینیا سازد فلما جاءت هم رسلهم دل بینات فرحو بما عندهم من العلم فرحو بما عندهم من العلم و هنگامی که رسولان آنها با دلایل روشن با سراغ آنان آمدند و معلوماتی که خود داشتند خوشحال بودند ولی آنچه را به سخریه می بر آنها رو دامد فلما رأو بعدنا قارو بالله و کفرنا بما کننا به مشرکین هنگامی که شدت عذاب ما را دیدن گفتند همقمون با خداوند یکان ایمان آوریم و به معبودهای که شریف اومیش مردین کافر شدیم فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما و او بأسنا سنت اللہی لکی قرقلت ای عباده و خطره نالک الكافرون اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند ایمان آنها بهارشان سودی نداشت این سنت الاخی در مورد بندگان پیشین او و کافران در آن هنگام دیانکار شدند